حکایت سیادی ضعیف را ماهی قوی به دامن در افتاد. طاقت حفظ اون نداشت. ماهی بر او قالب آمد و دام از دستش در رو بود و برفت. شد غلامی که آب جوی آرد. آب جوی آمد و غلام ببرد. دام هر بار ماهی آوردی. ماهین با رفت و دام ببرد دیگر سیادان دریق خوردند و ملامتش کردند که چنین سیدی در دامت افتاد و ندانستی نگاه داشتند گفت ای برادران چه توان کردند مرا روزی نبود و ماهی را همچنان روزی مانده بود سیاد بی روزی در دجله نگیرد و ماهی بی بر خشک نمیرد